دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود تعبیر رفت و کار به دولت عباله بود چهل سال رنج و غصه کشیدیم و آقبت تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود آن نافه مراد که ز زبخت در چین زلف آن بوت مشکن کلاله بود از دست برده بود خمار غمم سحر دولت مساعد آمد و می در پیاله بود براسان می کده خون می خورم مدام روزی ماز خان قدر این نوال بود هر گونه کاشت مهر خوبی گلی نچی در ره گذار باد نگهبان لاله بود بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح آندم که کار مرگ سهر آخو بود دیدین شعر دلکش حافظ به مده شاه یک بیت از این قصیده به هزد رساله بود آن شاه تند حمله که خورشید شیرگیر پیشش به روز معرکه کم تر غزاله بود